فصل زمستان از راه رسید بر خلاف انتظار آزیتا و شوهرش زودتر راهی شدند چون از طریق اقامت مهندس پارسا در انگلیس می توانستند زودتر کارهایشان را روبراه کنند ولی نرگس کارش بیشتر طول میکشید و به احتمال زیاد اواخر زمستان یا اوایل بهار می رفت که برای من همان دو سه ماه هم قلیمت بود. روز خداحافظی از آزیتا و رفتنش بار دیگر به یاد رفتن زری افتادم. بعد از سالها دوباره با همان شدت برای رفتن دوستی که بینهایت برایم عزیز بود اشک می ریختم. شاید یک هفته طول کشید تا حالم کمی جا بیاید و بدون اینکه به زبان بیاورم پیشاپیش پیش برای رفتن نرگسم هم گرفته بودم. برای همین، روز تولد بیست و شش سالگیم جز اخاطرات تلخم است. همون وقت ها علی هم که درسش تمام شده بود رفت سربازی و به عنوان افسر وظیفه به مشهد اعزام شد و این باعث بیقراری و گریهزاری مدام مامان توی خانه بود که تا حالا هیچ کداممان مان از او جدا نشده بودیم. از طرف دیگر، برای خرید محلی که برای مهد کودک اجاره کرده بودیم احتیاج شدیدی به پول داشتم. برای همین ناگزیر ماشینم را فروختم و این برای من که ماشین برایم مثل خانهی متحرک شده بود و کار راه انداز بود خیلی سخت بود. کشمکش با مادر سر مسئله ازدواج هم که روز به روز شدیدتر تر شد و حالا با نبودن علی و تنهای مادر دیگر از خانه هم نمی فرار کنم. سرعی هم به خاطر بیماری زهر و خانم و نبودن جواد که از طرف شرکت آقای ارجمند مدام در سفر بود نمیتوانست مثل گذشته زیاد به خانه ما بیاید. پس من میماندم و مادر و بیقراریهایش برای علی و آینده خودم. حالا که مجبور بودم وقت بیشتری توی خانه باشم تازه به تغییراتی که مادر کرده بود پی بردم. بعد از مرگ پدر انگار مادران صبوری و تحمل همیشگی را نداشت. به کچکترین بحانهی ناراحت می شد و گریه میکرد و آخر سر هم به این نتیجه می رسید که اگر پدرم زنده بود اوضا اینطور نمیشد. بعد با التماس سر و ته هر موضوعی را به ازدواج من می و مدام می میترسم مثل بابات منم ناغافل برم. اون وقت دستم برای تو از گور بیرون می مونه. علی مرده بالاخره خودش گلیم خودش و از آب میکشهم تو داره منو داغم میکنه اگر در پاسخ شوخی میکردم از كوره در میرفت و اگر سکوت میکردم برا شفته میشد و فکر میکرد به او اهمیتی نمیدهم و برای همین دیگر خانه برایم جوه آرام و آرامش همیشگی را نداشت بعد از چند سال که تازه داشتم آدمی عادی می شدم و با دنیای خودم و کارم آرامش پیدا میکردم، حالا این اوضا پیش آمده بود و کلافه هم می کرد. از طرف دیگر مریم هم غصه ها و ناراحتی هایش را که مهتاب علتش بود به محیط کار می و آنجا هم او یا پکر بود یا در فکر یا مشغول گریه. مهتاب از آن دست قربانی ها بود که برای فرار از چاله چاهر را ندیده و نشناخته و با سر در آن افتاده بود او که به قول خودش با ازدواج با مردی مسن و پولدار تصمیم گرفته بود گرهی از زندگی مادرش باز کند شده بود گرهی کورتر از بقیه برای اکرم خانم بیچاره چون به هیچ عنوان نمی توانست شوهری را که هیچ جور با افکار و آرزوهایش جور در نمیآید تحمل کند و از طرفی به خاطر بچه هایش راه گریزی نداشت مخصوصا بعد از ازدواج موفق مرگم انگار آرزوهای محتاب هم دوباره بیدار شده بود سراب پول و خوشبختی آسی و سرخورتش کرده بود و بعد جور سر ناسازگاری با شوهرش گذاشته بود با داشتن دو تا بچه در حالی که سومی را حامله بود یک سر در راه یه از به تهران یا برعکس بود ولی چون با مخالفت اکرم خانم ازدواج کرده بود و خاست خودش بود تا دهان باز می کرد همین را میشنید شنید که تخصیر خودته. بیچار او هم مثل من نراه پس داشت نپیش. این وضعیت محتاب، گریه هایش، بچههایش، بگو مگو جنگ اعصابی که به راه می و نگرانیی که پدید می مستقیما روی زندگی مریم و اکرم خانم هم تاثیر داشت. مریم هم که نمی‌خواست این مسئله را توی خانه و با ناصر مطرح کند، گریه و ناراحتی و درد دل‌هایش را میآورد به مهد کودک برای من. این در حالی بود که به دلیل شناخته شدن مهد کودک و بیشتر شدن تعداد بچه‌ها، اجباراً پرسنل و در نتیجه کارهای مهد کودک هم چند برابر شده بود و حوصله و وقت بیشتری می‌خواست. از سوی دیگر فشار روحی که ناشی از رفتن نرگس بود اعصاب مرا تحت فشار میگذشت احساس میکردم بعد از یک دوره آرامش دوباره دنیا با من سر جنگ دارد. فشارهای عصبی تحملم را کمتر میکرد حوصل ام را میگرفت و جسمم را فرسوده می کرد. و من دوباره همه شادابی و انرژی و روحی که با کمک نرگس ذره ذره به دست آورده بودم از دست میدادم. و دنیا پیش چشمم تیره و تار میشد و خودم بی و, و عصبی و پشمرده می شدم این حالت هرچه به موعد رفتن نرگس نزدیک تر میشدیم تشدید میشد. طوری که وقتی آخر فروردین ماه نرگس رفت، ناراحتی معده با چنان شدتی مرا از پا انداخت که یک هفته تمام بستری بودم. شبی که نرگس رفت برخلاف قولی که هر دو به هم داده بودیم که به قول خودش زنجموره نکنیم انگار به چشمهای هر دوی من سیل اشک بسته بودند. حتی کلامی حرف از دهانمان در نگ فقط اشک بود و اشک. و وقتی پشت شیشه ها نرگس پروگ آخرین بار حق حق دست کنداد و رفت من چنان احساس بدبختی و تنهایی و بیچارگی می کردم که انگار من به جای او توی شهری قریب گیر افتاده بودم درمانده بودم سرم رو توی دستهایم گرفتم و زار زنان انقدر توی فرودگاه ماندم که صبح شد و بلندگو اعلام کرد هواپیما از باند بلند شد خدایا چه روز سیاهی بود نرگس با خودش آرامش و تراوت روح و شادابی و نشاط زندگیام را برد حس و حال دوباره از من سلب شد درست مثل زمانی که محمد رفته بود اما بعد از هشت سال نه اعصاب آن موقع را داشتم نه نیرو و انرژی آن زمان را این شد که سردرد و ناراحتی معده ام کرد به زمین و زمان بد و بیراه میگفتم و فکر میکردم توی این دنیا به هر چیزی دل میبندم و دل دلخوش میشوم حتماً باید از دستش بدهم. از سرنوشت مزخرف خودم حالم به هم میخورد و در عین حال از اینکه که چاره جزده هم مول نداشتم دیوانه میشدم. آن روزها هم مثل تمام روزهای دیگر گذشت و من به سر کارم برگشتم. ولی دیگر نه آن روحی یه قبل را داشتم، نه حسل ای که با دل و جان مثل سابق به کارهاییم برسم. افسرده و بی سر کار رفتم که خانه نباشم. ناراحتی معده هم جور آزارم میداد و مادر که حال روزم را میدید به نظر و نیاز پناه برده بود و تقریبا دیگر به کار من کاری نداشت. یک ماه و نیم از رفتن نرگس گذشت و من روز به روز فرسوده تر می شدم. نا امید و بی انگیزه. مثل مردهی به زور جسمم را به دنبال میکشیدم. دیگر نه حسله کلاس رفتن داشتم، نه حتی جلسه های دکتر عبهری. بعد از رفتن نرگس حتی برای یک بار هم به کوه نرفته بودم. انگار هوا هم سر لچ داشت. با اینکه که خورداد بود، مثل وسط تابستان گرم و نفسگیر شده بود و آدم را کلافه می کرد. صبح روز دوشنبه بود که مادر گفت فردا تصمیم دارند با خاله منصوره به جمع کرم بروند و اگر من قبول کنم و شب به خانه ی امیر بروم مادر هم با خیال راحت شب به خانه ی خاله می‌رود که صبح زود حرکت کنند بدون چونو چرا قبول کردم ولی چند لحظه بعد یادم افتاد که چند روز از قرار بوده با مریم به خانه اکرم خانم بروم تا با مهتاب که دوباره به قهر آمده بود تهران حرف بزنیم. به مادر گفتم من میرم خونه اکرم خانم و شب اونجا میمونم شما نگران من نباشین از مادر که خداحافظی میکردم بوسیدمش و گفتم خوش بگذره نگو خوش بگذره بگو خدا حاجت تو بده این همه راه توی این گرم و نمیرم که خوش بگذرونم دعا کن خدا حاجتم رو بده میدانستم حاجتش چیست و برای اینکه سر حرف باز نشود گفتم باشه دعا میکنم. مادر دوباره گفت مهناز حالا امشب هم اگه نرفتی عیبی نداره فردا حتما برو خونه ی امیر زهر خانوم سه روز بیمارستان زشته سرای دلخور میشه. برو یه سری بزن یه حالی بپرس ناسلامتی خواهر امیری دختر برادرش که نیست خواهرو و برادر دیگم که نداره درسته تو هم چشم تو هم بذاری راست می میگفت پس به مادر قول دادم و راه افتادم تفلک زهرا خانم روز به روز حالش بدتر شده بود تا اینکه کلیههایش از کار افتاده بود و سه روز بود در بیمارستان بستری شده بود و من فقط تلفنی از امیر و سرعی حالش را پرسیده بودم حالا که جواد هم نبود مسلما به سرعی سخت می گذشت. فکر کردم فردا هر طور شده به ملاقاتش می رفم. بعد از اینکه که تمام شد همراه مریم راهی خانه ی اکرم خانم شدیم. توی خیابان همانطور که منتظر تاکسی بودیم یک دفعه چشمم به تابلوی افتاد که جلوی مرکز انتقال خون با خط قرمز نوشته بودند. نیاز فوری به گروه خونی به مثبت. خون من هم به مثبت بود. برای اولین بار و ناگهانی دلم خواست بروم خون بدهم. حالا از من اصرار بود و از مرگم انکار که می گفت تو خونت کجا بود؟ بیا بریم. من که حرسم گرفته بود با لج گفتم انگار در مورد پشه حرف میزنه. بیا بریم ببینی خونم کجا بود. مریم قرغر کنان به دنبالم آمد. و بالاخره موفق شدم خون بدهم. مریم به شوخی به خانومی که کیسه خون را میبرد گفت. خانوم روش بنویسین خونه ی آدم لجبازه. اگه کسی خواست و قبول کرد بهش بزنن. از جایم که بلند شدم سرم گیج رفت و از آنجا که هیچ وقت آب میوه دوست نداشتم نتوانستم آب میوه که برایم آورده بودند بخورم. به اصرار مریم که روبروی بیمارستان یک بستنی فروشی دیده بود، مجبور شدم همراهش بروم و یک ظرف بزرگ بستنی سنتی را که در حالت عادی بیشتر از شش تا هفت قاشق نمیتوانستم بخورم به قول مریم کوفت کنم. خودش فالوده خورد و برای من بیچاره بستنی گرفت و همان بستنی هم بود که مسمومم کرد و آن شب به جای حرف زدن با مطاب مریض شدم و قوز بالای قوز برای آنها. تا صبح از بس حالم به هم خورد نگذاشتم کسی بخوابد. فردای آن روز رنجور و مریض و در حالی که مدام به مریم بد و بیراه میگفتم آمدم سر کار. به این امید که حالم با آب قند و عرق نعنایی که خورده بودم بهتر شود ولی نشد. تا نزدیک ظهر حالم خراب بود و آخر سر دیدم فایده ای ندارد. برای همین به مریم گفتم میرم در مونگاه. دکتر تشخیص مسمومیت داد و برایم سروم نوشت. ولی من که حوصله نداشتم دو سه ساعت به بخوابم از درمانگاه بیرون آمدم و فکر کردم حالا که مادر نیست بهتر است به خانه ی امیر بروم. میدانستم که ثرایا می تواند سرم را برایم بزند. چون دیده بودم آمپول و سرم زهرا خانم را میزند. این بود که با آن حال خراب راهی خانه ی امیر شدم. و آخرین قوایم هم با دیدن محمد تمام شد و از حال رفتم.